دیگر بار جوابش داد رامین که چون آشق نباشد هیچ مسکین دلو را دشمنی باشد زخانه برو جوینده هر روزی بهانه گهی نالت به درد و حسرت دوست گهی گریت به داغ فرقت دوست اگر با عشق بودی مرد را خواب چه عشق دوست بودی، چه می ناب مرا از عشق شد پرده دریده شکیب از دل خرد از تن بریده به شبگیران چنان نالم بزاری که بلبل برگلان نوبهاری پیام من بگو سرو روان را بوت خندان و ماه باروان را دلم افتاده در مهرت بناکام شتابان همچو منده مانده در دام خرد آواره گشته هوش رفته دلندرتن نبیدار و نخفته मोहे दर्द گفت جادوکیش دایکه هستی در سخن بسیار مایه بدین گفتار نغز و لابه چون نوش به مغز بیهوشان بازاوری هوش دلت از هر کسی جویای کام است تو را هر زن که بینی ویس نام است نیارد بر تو این مه مهربانی اگر صد راه جان را برفشانی سزادت گردل ز پیوندش بتابی که او ماه هست پیوندش نیابی چو بشنید این سخن رامین بیدل ز آب دیده کردش خاک را گل ز سختی گریان در برش بشکست شکنج گریه گفتارش فرو بست هم از گریه بماند و هم ز گفتار بران بخشای کو باشد چون به فرجا من در او آویخت رامین بر او ریزان ز دیده عشق خونین چو بشیدین سخنها دایه‌ی پیر تو گفتی خرد بر دل ناوچی تیر را گفت راما نیک ناما نگردد همچو نامت ویس راما دلم را تو بدین گفتار خستی چو جانم را بدین زنهار بستی نگر تا هیچ گونه غم نداری که از این اندوهت آیت رستگاری تو خود بینی که کامت چون برارم به نیکی روی کارت چون نگارم تو هر روزی بدین هنگام یک بار گذر کن هم بدین فرخنده گلزار که من خود آگهی پیش تو آرم زهر کاری که دارم یا گذارم هر دو دل بر این وعده نهادند رو خانه را بوسه دادند به پیمان دست یکدیگر گرفتند بدین گفتار و پس هر دو برفتند دایه که رامین را آن زار و درمانده یافت دلش را به حال او رحمت آمد نزد ویس شتافت و از اندوه و پریشانی رامین اسه ها گفت و از او درخواست که رامین را از درد و مهنت جانسوزش برهاند و با او از در مهر درآید. آید چو دایه پیش ویس دلستان شد چو جادو بدگمان و بدنهان شد سخنهای فریبنده بپیراست به دستان و به نیرنگش بیاراست چو ویس دلستان را دید غمگین از آب دیدگان ترکرد بالین به دو گفت ای مرا چون جان شیرین نبیماری چه داری سر به سبکتر کن ز دلبار گران را کزو آسیب سخت آید روان را نبس کاری بود آسیب بردن گذشته یاد کردن درد خوردن اگر فرمانبری خرم خور خورم نشینی به وقت خیش خورسندی گزینی؟ چو بشنید این سخن؟ ویس دلارام تو گفتی یافت لختی در دلارا. چو خورشیدی سر از بالین برآورد زنبر سلسله برگل بگسترد زمین از رنگ رویش نقش چین گشت هوا از بوی مویش انبرین گشت رخانش بود گفتی نوبهاران هم از چشمش برو بارید باران مگر یه را گفت این چه روز است که گویی آتش آرام سوزد است چیزی که نوگردد زگردون مرا نوگردد اندوهی دگرگون نگارستان و باغ و کاخ شهوار مرا هستند همچون دوزخ نار گهی می سوزم از تیمار مادر گهی بیهوشم از درد برادر نه روزم هست آرام و نه شب خواب به روز و شب ندارم جز تب و طب شنیدم هر چه گفتی ای پری روی فتادن در دلم چون آهن و روی اگر چه درد بر تو بیکرانه است مرا درد تو بر دل بیش از آن است به مروندر بسی دیدم جوانان دلیران جهان کشور ستانان وزیشان شیرمردی است کجا در هر هنر گویی است. گریشان اخترند او آفتاب است وریشان ریشان انبرند او مشک ناب است خجست نام و فرخبخت رامین فرشته بر زمین و دیو در زین به ویرو نیک ماند خوب چهرشت گروگان شد همه دلها به مهرش و با چندین که دارد مردواری به دل این داغ دارد چش داری تو را دیدست و آشق گشته بر تو امید مهربانی بسته بر تو دلی دارد بلا بسیار خورده نهیب به آشقی بسیار برده جهان نادیده در مهرو افتاده دل و جان را به دیدار تو داده تو را بخشای من در مهرو او را که بخشودن سزد روی نکورا شما را دیدم در عشق بیار دو بیدل هر دو بیروزی از این کار وقتی ویس از دایه آن گفتارهای ناپسند شنید از سعیش در مهرورزی او بارامین شگفت شد و سخت خشمگین گشت سرش از دیدگان ستورد و آنگاه سر برآورد و ندیمه را از آن سبب که راهبر او به سوی بدی هاست نکوهش ها کرد و بینیازی خیش را از مردان و عشق آنان باز گفت چوویس ماه روی خوب دیدار شنید از دای این وارون گفتار ندادش تا زمانی نیک پاسخ سرش از شش ریزان برگل رخ ز شرم دای سر در بر زبان بسته ز پاسخ لبز خنده آنگه سر آورد و به تو گفت روان را شرم باشد بهترین جافت تو را گر شرم و دانش یار بودی زبانت را نه این گفتار بودی هم از ویرو هم از من شرم بادد که از ما سوی رامین گشت یادد مرا شوخی و بیشرمی ملاموز که بیشرمی زنان را بد کند روز دلم را چه شتاب و چه نهیب است که در وی مرد را جای فریب است هم آلوده شوم در ننگ جاوید هم از مینو بشویم دست امید اگر رامین به بالا هست چون سرف به مردی و هنر پیرای مرو همو را به خدایش یار بادا تو را جز مهر رامین کار بادا پناه من به هر کاری خرد باد که جویت راستی و پرورت داد امید من به یزدان با جاوید که جز او نیست شایسته به امید چو بشتید این سخن دای از آن ما زویسه دست کامش گشت کوتا ز دیگر در را داد پاسخ که باشد کار نیک از بخت فرخ قضاگر بر تو راند مهربانی نباشد جز قضای آسمانی پدید آمد تو را گفتار من زود که این آتش ندیدی تو مگر دود جوابش داد ویس ماه پیکر که نیکو بد همه بخت آورد بر ولیکن هر که او بد کرد بد دید بسا مردم که یک بد کرد و سد دید نخستین کار بد آمد ز شهرو که دادش جفت موبت را بویرود منم بدنام و ویرو نیز بدنام منم بیکام و ویرو نیز بیکام مرا این پند بس باشد که دیدم ز بدکاری و بدکاران بریدم اگر صاحب دلان باب انایت بگشایند گشایند، بقیه داستان و ماجرای دلدادگان در برنامه آینده تقدیم می شود. نوشته و تنظیم نادر vazinpour با همکاری هایده وفایی سیمین مجید نجاهی سرخوش محمود رحمانی پور اسکرپور حسن ناهی امدانیان، زفیره داداشیان، ازرا، فریدون اسماییلی، سیروس ابراهیمزاده، بهزاد فراهانی و آزر پژوهش. موسیقی از علی تشبیدی تأیه کننده منو خلیقی زیر نظر امیر فریدون گرکانی